سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون مفهوم واقعی صبر و تجلی آن در تمام شؤون زندگی بشر با توجه به فرموده امام حسین علیه السلام در توط آشورا نوار شماره یک السلام علیکم یا عبدالله و علالارواح حلت به بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جهل الله آخر الآهده مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الحسين عليه السلام صبرا بن الكرام فم الموت الا قن تعبر بكم عن بکم آن البؤس و الزرآ، إلى الجنان الواسع و النعيم الدائمة، فايكم يکره و ينتقل من سجن إلى قصر، و ما خو ولا اقداوكم الا كمن ينتقل من غصراً إلى سجن و إن أبي حدّسني أن رسول الله إن الدنيا سجن المؤمن و جنة والموت جسرها أولى إلى جنانهم و جسرها اولا إلى جهيمهم ما كذب ولا كذبت. این حدیث فرمایش ابو عبدالله الحسین علیه السلام و سلام است که در صبح آشورا بعد از اون که کاملا قربال شدند، اونهایی که بنابود برن رفتن اونهایی که دیگه ثابت قدمان حالا دیگه از این امتحان خاص خارج شدند و تو مرحله آمادگی برای ادامه معموریت خودشون رو نشون دادن حضرت اینها رو دستور دادن جمع شید جم شدن و این مطالب که چند صد خدمتون خوندم این مطالب رو به اینها فرمودن که دو سطحش رو فعلا نوشتن که شروع کنیم ببینیم در این چند شبی که بیاری مولایمون امام عصر روحی و ارواح العالمین اله تراب مقدمه الفدا چقدر توفیق پیدا می این فرمایش مولا رو بحث کنیم اول قبل از اینکه وارد شروه و بحث عبارت بشم این نکته در خور تعمقه از مدینه تا مکه از مکه تا کربلا نه یک بار کرارن در روایات داره و مخصوصاً شب آشورا حضرت هی می هر که میخواد بره بره حتی از مکه وقتی حرکت میکردن فرمای شات مختلف این بیان رو فرمودن که من قبلن سالهای گذشته مدارکش رو آوردم بحثش رو مطرح کردم دیگه تکرار نمیخواد که فرمودن آنانی که حاضرن سرشون بالای نی بره با من بیاینده یعنی از اول اتما موجهت کرد ما راهی که در پیش داریم راه خاصیه شب و آشورا هم فرمود برید هر که میخواد بره بره اما یه دفعه صبح میفرماد صبران واسید استقامت کنید خود این در خوره تعمق نیست یعنی چی؟ تا قبل از این لحظه میفرمایید که برید با من کار دارن با شما کاری ندارن و هر که اگر به امید منافع مادی دنیا برخی از مظاهر آمده بداند که همه ما کشته خواهیم شد سرهای ما بر بالای نی خواهد رفت ولی صبح ها آشورا میفرماید فرمایت بنل کرام اگر بنل کرام رو خیلی کوتاه توجه کنیم صبرن رو که امشب میخوام رو کمی بحث کنم شاید مشخص بشید در مسیر تکامل معنوی و سیر الی الله این یک واقعیتی است که برخی مراحلی رو طی می‌کنند، مشکلاتی رو تحمل می‌کنند و حتی اقتضای برخی از فضائل تحمل برخی از مشکلات. یه نظامی است بر عالم حاکمه اگر کسی بخواد در این نظام حاکمه بر این عالم که پروردگار قرار داده عالم بشه تحمل مشکلات مخصوص به خودش رو داره اگر مشکلاتی را که برای کسب علم لازم است تحمل نکنه آیا به موهبت علمی دسترسی پیدا خواهد کرد نه یک نظام در عالم یا کسی بخواهد به قدرت روحی غوی برسد تذکیه نفس میخواد باید مشکلات تذکیه نفس زحمات تذکیه نفس اون اموری که در رابطه با تذکیه نفس ضرورت داره همه رو تحمل کنه تا به اون قدرت روحی که لازمش هست برسه یعنی خلاصه در عالم خداوند یک غوالی قرار داده برای رسیدن به یک ارزشهای مسائلی باید تحمل بشه حالا آیاتشو شاید امشب فرصت شد در لابلای بحثا برسیم به اون آیاتم انشاءالله بخونیم از نظام قطعی پروردگار در این عالم این است کسانی که میخوان به درجات بالای قرب معنوی برسند در سیر و سلوک معنوی قر پیدا کنند، اینا حتما باید در ابتلاعات حدی قرار بگیرن و در این ابتلاعات حاد جزع نکنن چون جزع مانع از رسیدن به اون ارزش ها می شود لذا یکی از اون مراحل بسیار مهمی که در این عالم برای تعالی ره صبره و حضرت به بنیل کرام می فرماد حالا دقت بکنید یک کمی بنیل یعنی چی؟ دو تا عبارت رو هم باز در روز آشورا دوجه بفرمایید این عبارتی را که خود مولا فرمود همه نقل کردن و قبول فرمود لا اصحابه که اصحابی امامه معصومه لا اصحاب از نظر ادبیات عرب لا لای لایه, لایه نفی جنس لای نفی جنس در ادبیات عرب چه معنایی رو میرسونه نفی عموم و مطلق رو لا اصحابه یعنی هیچ اصحابی هیچ اصحابی یعنی اصحاب ازت آدم اصحاب حضرت موسی بیاید تا اصحاب حضرت ایسا حواریون تا اصحاب پیغمبر اسلام تا اصحاب پیغمبر اسلام جمعیت جنگ بدر و هاکذا هیچ کدوم مثل اینهایی که با من هستند لا اصحاب که اصحابی مثل اینا نیستن خب در بین اصحاب امم قبلی آیا افراد بر جسته قوی پاک ارزنده امثال اصحاب جنگ بد غیرم و غیره و غیره مگه نبودن چرا؟ این مقامی که این عده میخوان بش برسن در روز آشورا این مقام را هیچ یک از اصحاب بر جستگان عالم بهش پیدا نکرد و لذا قبل از آشورا هر وقت در محضر پیغمبر صحبت ارزش اصحاب آشورا بود گریه می کردن و اولیا میگفتند ای کاش ما جز اونا بودیم و بعد از واقعه آشورا هر کسی که توجه به این ارزش پیدا کرده میگه یا لیتنا کنا معکم ای کاش ما با شما بودیم ای کاش ما میتونستیم در اون سطح از ها واقع بشیم این تفسیر را در زیل آیه شریفه کاب یا این ذکر و رحمت و ربک و زکری یا اذنادا ربहू خفی یا حتی اهل سنت آوردند اختصاص به شیعه نداره اونام نوشتن که حضرت زکری یا که در بین انبیا خود مقام بسیار بالایی داره از خداوند میخواد که خدایا بندگان مغربت را و ارزش‌های عالم بالا رو به من نشون بده. خدا صحنه کربلا رو بهش نشون بده جالب یعنی حالا من گیرم، لغت گیرم. به یه باغوانی میگم زیباترین گلی که تا حالا تونستی تو عالم پرورش بدی به من نشون بده. یه وقت موجود داره میکنه میگه اینه. یه وقت عکسش رو داره میگه که این بهترین گلی است که تا حالا من تربیت کردم، پرورش دادم. زکریای پیغمبر قرآن بخوانیم که به زکریا چه میگه روایت داره زکریا رو گذاشتن لای درخت اره کنن دیگه وقتی اره رسید به قسمت گردن زکریا رفت یه ناله کنه الله اکبر ندا اومد مقامت پایین میاد آ هر رو انقدر کشیدن که درخت با بدن زکریای پیغمبر نفت شد زکریا آخ نگفت یه همچون پیغمبری وقتی تو این ابتلا قرار میگیره وقت این ذکریا میگه خدایا با من نشون بده خدا سعنه کربلا رو نشون میده وقتی میبینه میگه خدایا هنوز رو خدا بش نداده اولادم نداره میگه خدایا دوست داشتم که من کربلا بودم و جز اصحاب امام حسین شدم این بنل کرام جز اصحاب امام حسین شدم ولی حالا که این جوری تو پرانتز بگم دلم قرار نمیگیره زیارت ناحیه مقدسه امام هست میگه جدا اگر چه زمانه بین من و تو فاصله انداخت یعنی از نظر زمان بناس من چند مثلا دویس سال بعد از شما باشم اگر نبود من در زمان شما مثلا حالا که نیستم چه میکنم این عبارت رو بعد بگیری راجب مامعخ قبل حالا راجب حضرت زکریا به بفرمایید. زکریا میگه من که نمیتونم کربلا باشم ولی خدا یاد دلم میخواد یه پسری به من بدی به عشق حسین در راه حسین سرش رو از بدن جدا کنم که خدا یحیا رو بشتا از نادرب و اون خفیا وقتی بحث شده توی تفاسیر حتی اهل سنت هم این اعتراف کردن انبیای گذشته نسبت به اصحاب کربلا برجستگان و امامان بعدی نسبت به اصحاب کربلا زیارتی که برای اصحاب شهدا هست خدا قسمتتون کنه مشرف شدید کربلا حواستون باشه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 ذریع رو دور میزنن به این پایین پا رسن دوباره برمیگردن از اون بر. چرا؟ میگن اینجا همه محل دفن اصحاب حضرت همه شهاز اینجا دفنن الا حبیب ابن مظاهر که اون جلو میدونید و حرم که بردن در یه فاصله دیگری یا میان از اون رواق پشتی دور میزنن میان اون قسمت بالا سر میگن اینجا پا روی این قسمتی که قبر این بزرگوارانه نمیگذاریم زیارت میکنید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 مودت و صف خدای بر به درجات مرحوم علامه امینی بی افضایات که میفرمایند چرا نفرمود الا محبتا الا قلا اسلكم علیه اجرا الا الموده محبت و مودت رو مرادف میگیرن ولی قرآن خیلی دقیقه ایشون میفرمایند نه به زبان عرب مراجعه کنید دقت کنید مودت امیقتر از محبته به این معنی محبت با اون شکل صحیح و عالی خودش که دوستی با خود محبوبه دوستی با دوستان محبوبه دشمنی با دشمنان محبوبه این میشه مبده یعنی هم تولی داره هم تبری باید همه رو با هم دیگه داشته باشه علیکم یا انصار دین الله و عبد داعه. به خدا مشکل میتونم خودمو تحمل کنم تا بتونم همین مقداری که من بچه به ذهنم زده بتونم اینو منعکس کنم کی مقام یعنی چی؟ انصار دین الهی مقام ودی که شما پیدا کرده اید پس یعنی در این مسیر کمال شما اگه میخواید عالم بشید کلاس، درس، معلم، استاد، خوندن خونه دل خوردن، رنج بردن اوه! چقدر اشکالات تو ذهن میاد جواب اشکالاتو پیدا کردن استادی ما داشتیم خداش خیرش بده یه وقتا میرفتیم رفتیم پیششون یه سبک خوبی به ما یاد داد. هی hey, سوال می کردیم اشکال می کردیم گفت خوبه سؤال کنید ولی انقدر مسئله نباشید یه مقدارم حل المسائل بشید. خودتونم رو مسائل فکر کنید چون طرح اشکال تو مشکل نیست. ببینید خودتون روی اشکال فکر کنید میتونید حل کنید یا نه. اول نیروی خودتون رو به کار ببرید بعد برید سراغ کسانی که میتونن و به خصوص این رو تاکید میکنم تاکید میکنم عزیز من اگه اشکالی به ذهنت زد هرچی فکر کردی جواب پیدا نکردی فکر نکن جواب نداره خودتو رو قرار نده برو با جاهای دیگه بحث کن اونایی که بیشتر کار کردن زحمت بیشتر کشیدن و بین خود و خدا به اندازه تو هم لاقل دین دارند بدینتر از شما شاید نباشند چرا اونها اینو معتقدند لابد یه چیزی فهمیدن برو بپرس بعد غذاوت کن حالا ما در این وادی کمال یه عالم میخواییم بشیم بپرسیم سوال کنیم مطالعه کنیم اشکالات پیگیری کنیم تا بتونیم مقدار عالم بشیم میخایم آدم بشیم عالم شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل میخوایم آدم بشیم برای آدم شدن چقدر باید زحمت بکشیم اون مراحلی رو که با کی کرد کی کرد که یه نمونهش صبر کالا میخوایم بحث کنیم امشب کسانی که این مراحل رو طی کنن به مقام کرامت میرسن که ان الله از آیات و قرآن و روایات مقام کرامت رو توضیح میدم مقامی است که اسمت نیست تالی تلب معصومه لذا راجب فرشتگان داره عباد مکرمون مکرمون راجب ائمه هدام عباد مکرم داره ولی اضافه داره کالا ارزم کنم در قرآن اشاره به چیه پس اونهایی که در این مراحل تکامل اونغدر بالا میرن که به مقام تالی تلوه معصوم میرسن مثل جناب سلمان فارسی ها و دیگران اینا میشن افراد کریم و با کرامت و مرحله ارزنده دارندگی کرامت امام حسین میفرماد بن بنل یعنی نه تنها خودتون اصلا شما نجاد و نسلتون و زمینه و اصالت وجودیتون این توفیقو داشته که غربال بشید جدا بشید جدا بشید تو این مرحله تا به اینجا برسید حالا که به این مرحله رسیدید صبرن صبر کنید یعنی میخواد از این مرحله برن بالاتر دیگه پس اینجا دو تا verse جدا کنید یک صبر چقدر مهمه صبر چقدر مهمه برای کسانی که مقام کرامت دارند و باید به درجه بالاتری برسن لازمه رسیدن به اون درجه چیه صبره اگه صبر نداشته باشه به اون درجه نمیتونه برسه پس صبر چیه حالا اگه روایت میگه صبر برای ایمان به منزله سر برای بدنه کلا میرسیم انشاءالله اینا رو بحث میکنیم این نشون میدین چی پس یک کسانی که به مقام کرامت هم رسیدن بخوان به مرحله بالاتر برن باید صبر داشته باشند سبور باشن دو این مقام برای سعود و تعالی اونقدر امکان دارد انسان بالا بره حتی جزء بنل کرام شد هنوز تمام نشده بازم میشه رفت بالاتر خیلی مهمه. اگر جزء بنل کرامه که روز آشورا قربال شدن جدا شدن جزء خسیسین گشتن ابی عبدالله علیه السلام داره با این خسیسین سخن میگه در عین حال میفرماید میخواید به مرحله بالاتر برسید صبر رو پیشه کنید پس این مرحله بالاتر دیگه چیه که یه مقداری به بحث‌های من میخوره که اون سبقت الالعالمین اونو جدا جای خودش باشه جلو بیافتین سبقت بگیرید کیا سبقت گرفتن ما چجوری با سبقت بگیریم ولی این مقداری که حالا می‌خوایم از آشورا درس بیاموزیم فعلا داریم بحث میکنیم پس قانع نشیم یعنی چی این درس اول درس اول، درس دوم، حالا باید روش سب رو بحث کنم. درس اول و همین مقدار اجمالن. یادگار محرم امسال ما. یک، در هر سطحی از کمال، ترقی، معنویت، کمالات سیر الله قرارداری، قانه، مشهو. امکان سطح بالاتر برای شما هست. به همین جهت مولا امیر علیه علی و وسلام چه میفرمایند میفرمایند همیشه در امور معنوی قویتر از خود را ببین و در امور مادی ضعیفتر و پایینتر از خودتو در امور معنوی اگر شما توفیقاتی دارید در مسائل معنوی در یک سطح نسبتا خوبی قرار گرفته ای چه خبر دارید که از شما بالاتر ارزندهتر غویتر در این عالم چقدر افغانه به این حد نشی وقتی بالاتر دیدی هوس کنی برای رسیدن به اون مقام بالاتر حرکت کنی به بالاتر برسی لذا میگه سعی کن بالاتر از خود در مسائل معنوی رو بشناسی و نسبت به اونها هیچشم به دوزی و زمینه حرکت رو برای خودت فراهم کنی پس یک در آشورا به ما امام حسین یاد داد میتونی بری بالا اگر بنل هستی، حشتی بکوش به مرحله بالاتر بری ولی میفرما صبرن بنل کرام ای بنل کرام کسانی که در این حد از کرامت میخواهید بالاتر برید صبور باشید اینجا یک بحث داره صبر یعنی چی کالا بحث می‌کنیم که امشب تموم بشه دو در هر مرحله‌ای که قرار گرفته‌ای برای رسیدن به مراحل بعدی یک تحمل ها یک مسئولیت ها را پذیرفتن و یک تقبل زحمات باید داشته باشید بعدی وقتا دیده شده مثلا به خصوص در دکان توی این حرف دیگه الا ماشالله میاد طرف میره پیش یکی آقای راهی به ما نشون بدید یک طریقه و روشی که دلمون میخواد خیلی تکامل معنوی پیدا کنیم رشد کنیم به مقاماتی برشیم خوب خب اهدافتون بلند عالی احسن خب چی مثلا پرد کنید که دیگه حالا شب باشم نماز شب بخونم مطاقه کنم چه بکنم اینا رو حالشون ندارم مثلا فرض کنید نمیشه صبح صد تا صلابات بگم ظهرم صد تا لا الهی لاله بگم نماز بعد نماز مغربی شام مثلا صد تا لا الله و لا الا بگم یه چله میشینم میگم حالا اصلا چقدر هنر کرده؟ یه چله صد تا ذکر زود گفتم صد تا ذکر زود صد تا ذکرم شب بعد از چله بنده بشم سلمان فارسی نه اینجوری نیست خیلی زریفه خیلی زریفه گاهی میشه دونم به خصوص به اون بزنگاهای حساس که میرسونم آشورا داره یاد میده به ما جدا شده تا رسید صبح را تازه بعدش میگه سبرن حالا دقت کنی، ولی وقتی به اونجا برسند تازه بعد میفهمن، اوه چه خبره چه عالمیه، چه ارزشهایی در این وادی اگر بناس انسان در این سیر قرار بگیره تازه وقتی میاد جلوتر به همون مثال علمی دقت بکنید میخوام عالم بشم خوب بیاد درستان تیکون زحمات درستانو تموم میکنه زحمات راهنمایی رو تموم میکنه دبیرستانو میاد لیسانسو تازه وقتی به مرحله دکترا میرسه تازه میونه چه خبره که ما چیزی بلد نیستیم تازه بعد از فارغ و تحصیل شدن ظاهری اصطلاحی از مراحل دانشگاهی اگه لذت علمو بهش چشنده باشن حالا تازه میگرده تو این زمینه‌هایی که ای چیزایی به ما یاد دادن کیو پیدا کنم اینور و اونور عالم که برم از حقایقش به کام ما چیزی بریزد له لح, لح میزنه و اینور و اونور میگرده چرا چون پله بالاتر پله بالاتر این پله بالاتر اتش بیشتر درست میکنه هر وقت در هر امر ارزشی غانه شدیم نقطه شروع زدن و بیشارگی ماست در این مسیر هیچ وقت غانه نشید قناعت در مسائل مادیه بله در مسائل مادی خدایا رو را شکر این هم, هم توضی دادن این رزقه به ما میرسونی ما داریم زندگیمون میگذره دیگه خیلی بلند پروازی اونو بله گفتن ولی در مسائل معنوی قانع نشو برای اینکه مسائل اقتصادی و مادی ابزار رشد مسائل معنوی شماست ثال نداره. خوابگاه دانشجوی کمک هزینه تحصیلی دانشجویی. یا به اسطلاح حوزوی بگم حجره های طلاب شهریه طلاب یه وقت این حجره و خوابگاه به اندازه لازم شرائط استراحت و زندگی برای دانشجو و طلبه نداره خب نه سعی کنید خوبش کنین سالم باشه بهداشتی باشه نور اندازه کافی برسه این بنده خدایی که میخواد تو این اتاق بخوابه یا توش زندگی کنه شرایط لازم رو داشته باشه خیلی خوب داره شهریه بهشون بدید کمک هزینه تحصیلی بدید کار بسیار خوبیه. و اندازه‌ای که من خدایی که می‌خواد دانشجو درس بخونه، اینقدر فشار مالی ازیتش نکنه که این فکر نتونه کار کنه. شهریه در اختیارش بذار که بتونه زندگی سالم داشته باشه. حالا سوال، این شهریه و کمک هزینه تحصیلی و این مسکن با عنوان خوابگاه یا حجره تولاب، هدف هست یا ابزاره؟ ابزار برای عالم شدن حالا بنده به زرق و برق و حجره به میزان کمک هزینه تحصیلی به گونه ای مشغول شوم که از درس خوندن باز بمانم خب هر کسی میگه کار غلطه ما کل فعالیت اقتصادی و مالی دنیا را آیات و روایات میخوایید فراوان براتون بخونم و دلائل و شواهد عقلی استدلالی هم بگم برای چی میخواییم؟ برای یک هدف که در مسیر تکامل معنوی و قرب حق ابزار باشه لذا میگه قانه باش قانه باش یعنی به میزانی که برای قربت لازمه این میزان یه وقت شما میگی آقا من میخواهم پول در بیارم با کمکی که از طریق پول به بندگان خدا می کنم خدا پیدا کنم خوبه. خود پول در آوردن وسیله قرب شما بشه. اما اینو توجه بفرمایید در اینجا قناعت معنا داره ولی خود اصل غربه به حق معنا نداره که قانع بشید چون حق حد نداره تا غربه به او حد داشته بشه. و به همین جهت در روز آشورا به اون بر جستگانی که امسار دین الهیان ابد لا اصحاب که اصحابیان با همه ارکا میگه صبرن هنوز باید استقامت کنید آه خب بیاین سراغ صبر سر. همین جا خیلی داره ولی این درس فعلا داشته باشیم بریم جلوتر. پس باید صبر کنیم. صبر چیه؟ آقا این صبر صبر صبر عجیبه. اجمالا بگم تا بعد با هم روش خیلی همیز باید حرف بزنیم برادرم به خصوص جوان خواهران میخواین به جایی برسین و سرمایه در مرحله اول ایجاد صبر در خودتونه چون کسی که صبر نداشته باشه که در مراحل اولیش که انجام واجباته در میره مرحله یک کم بالاتر اجتناب از محارمه در میره حالا میگم چرا اونو گفتم بالاتر چون انجام واجبات راحت تر از ترک محرماته و لذا فرمودن اجتناب و اولا من اکتصاب الحسنات حالا بحث میکنیم انشاءالله مرحله بالاتر به قرب نوافل رسیدن نه قرب فرائز توضیح میدم اینا رو اونجا دیگه صبر معرکه میکنه مرحله بالاتر اصلا خود را ندیدن و فنا را خواستن اون صبرایی میخواد چون لازمه فنا چیه؟ یه اشاره بکنم معلوم بشه چی میگم لازمه فنا چیه؟ من نه اگه من نه درد من من نیش تا درد من مطرح باشه وقتی من نباشد درد من نباشه اظهار درد هم معنا پیدا نمیکنه روز آشورا اصحاب امام حسین اینجوری بودن اصلا شمشیر رو نمیفهمیدن چون فانی در امام حسین بودن تیر به بدنشون متوجه نمیشدند جلو امام حسین ایستاده تیر از هر طرف میاد تیر یک ت تیغ معمولی گل روز به دست ما بره تا چند روز حالمون به شکل خاصیه از هر طرف در فاصله نماز امام حسین تیر داره میاد به جانش میرسه خم به ابرو میاره تا وقتی که نماز امام تموم شد نماز که تموم شد تازه رمق تموم میشه میفته اگه امام نماز میخوند هنوز خودشو نگه می داشت شبیهش و اصحاب پیغمبر هم یه مورد داریم پیغمبر با اصحابشون داشتن از یک صحنه جنگی برمیگشتن یادم بیاد اسم اون داشتن از صحنه جنگی میگشتم، فرمودن که سپاه خسته است لشکری‌ها خستن شب استراحت کنید کی پاسبانی میده نگهبانی میده که دشمن شبیخون نزنه چند نفر که یکیش جناب اماره و چند تا دیگر حالا اسمشون یادم نیست گفتن ما به نوبت دور این لشکر همینجور پاسداری میدیم شماها بخوابید جمعیت خوابیدن یکی از اینها گفت حالا که من مثلا پرس کنید این جمعیت که هستن من باید جلوی اینا این ورابه پام که از اون دشمن داره شبیخون میزنه اختار کنم. گفت خواب روبه قبلم هست میتونم در حال نماز باشم. از وقتم چند تا استفاده کنم. این خود این یه درس دقت بکنید. منی که حالا شب زنده دارم. دارم نگهبانی از سپاه اسلام میدم. کم اجره نه. ولی در عین حال بذا ضمنش میتونم نماز مستعبیام بخونم بخونم مؤمن باید کیس باشه مؤمن باید چه میتونه هل ادل لوکم alat tijaratan تجارت تجارت رو آقایونی که در کارهای اقتصادیان اونا میگن ما بلد نیستیم حالا بلد نیستیم دروغ نباشه چیزی که بلدیم ولی مثل آقایون که بلد نیستیم معمولا میگن لازمه تاجر موفق اینه با سرمایه کمتر وقت کمتر سود بیشتر بتونه پیدا کنه با ملاک شر البته حالا سرمایه خیلی کلان، وقت زیادیش اندرگازان سود درمیاره. میاره این که خیلی تاجر موفقی نیست روال داشته باشه در تجارت معنوی هم چقدر میتونید بهره ببرید بهره قربه هست لذا میگه حالا که دارم پاسداری میدم نسبت به این هم خب نماز شب به نماز شب ایستاد به قنوط ایستاد دیگه اوج اشقبازی با خداست دیگه ابنادر در کارو بزنید اوج عشق بازی نماز وتر دیگه اونجاست دیگه با خدا بگو درد دل کن مطرح کن رفت تو حال خودش دشمن از دور دید دیدها یالان لحظش تیرانداز انقدر تیر به بدنش خورد در تاریخ پیغمبر نوشته شده که این بنده خدایی که خواب بود بیدار شد ولی این آقا متوجه نشد وقتی بیدار شد سر صدا کرد تکون دادینو در اثر تکون گفت چیه گه متوجه نیستی تا گم متوجه نیستی افتاد یعنی مقام فنا مقام فنا چیه فانی در ذکر الهیه وقتی فانی در ذکر الهیه تیر ان اوجش مولا امیرالمومنین تیر از پاش میکشند که متوجه نمیشه اینا به اندازهای که دارن دنبالش میرن این مقاماتو پیدا میکنن پس باید به درجه بالاتر رسید وانه نشد پس صبر میخواد این صبر برای انجام واجبات استقامت میخواد که آدم بتون شد صبر میخواد که واسه نماز نمازشو بخونه صبر میخواد واسه روزش رو بگیره صبر میخواد بتون از مالش بگذره در راه خدا بده و حاکذا اما از این بالاتر اجتناب از محارم صبر میخواد که این هوای نفسو بگیره تو کف دستش بگه نه تو دلت میخواد چنین باشي نمیزارمت وای میستم ببینید وای میستم وای ایستادن صبر کردن دیگه استقامت به خرج دادن بحث میکنیم از این بالاتر در غرب نوافل در مراحل بالاتر از انجام واجبات و ترک محرمات و این نکته رو بزرگی میفرمودن بزرگی که روش حساب میشه کرد میفرمودن همونطوری که هر کاری در این عالم زحمات لازم خودش رو داره بالاترین در این عالم اون مقامات معنویه که بعد از واجبات حاصل میشه تحمل مشکلات اون مرحله بیشتر از همه جاست کسانی که با اون مرحله میرسن میندازنش تو امتحان من دوستانی که آزم مکه بودن بارها بهشون گفتم گفتم از ای که محرم میشید حواستو جمع کنید از ای که محرم شدید دیگه مرحله خاص مهمانی خدا شروع شد لبک رو که میخواید بگید الان حالت حرکت به خدا داره آغاز میشه همون موقع شیطان بیشتر میاد به سراغتون حواستون جمع کنید چون شیطان میگه وای این بنده داره با خدای خودش مرتبط میشه لذا زون میکنه به طرف شما کسانی که در مسائل قرب الهی میخوان به اون مقامات معنوی برسن شیطان میاد میگه حالا شروع میکنم به صور مختلف اگر بشه اینو از اون میدون بدر کنم تا حدی که وقتی اسماعیل همراه ابراهیم خلیل الرحمن میره در منا به قربانی برسه، شیطان پشت حرکت میکنه. هی hey اسماعیلو تحریک میکنه برگرد با بابات نرو. اسماعیل رو، اسماعیلی که وقتی پدر میگه باباجون میخام تو رو در راه خدا ذبح کنم، میگه پدر هرچه زودتر انجام بده که مبادا عاطفه پدری ما نوبشه. یک همچو جوان پاک متدین در این حال ابلیس میره سراغش که بشه برش گردونم میخوای رشد کنی باید بیستی حالا بن الکرام ای برجستگان عالم ای صاحبان کرامت و ارزش های والا شما میخواهید برید بالا صبر باید داشته باشید پس صبر چی صبر مقوله به تشکیکه دیگه صبر ابتدایی صبر در حد متوسط صبر نهایی این اون صبر نهاییه اول صبر رو معنی کنم آیاتی در قرآن فراوانه ببینیم امشب چقدر شو میرسیم که وقتم داره تموم میشه صبر یعنی حبس امساک اینا رو از کتابای لغت نوشتم خیشنداری حبس نفس بر چیزی که شرع و عقل حقازا می کند یا عقل و از آن نهی می کند به نظر می رسه ظاهرش کمی معارضه یعنی چی؟ دقیقه حبس حفظ یک چیزی رو نگهداری. خب صبر یعنی حبس یعنی چی؟ یعنی بتونیم خودمون رو نگه داریم ن... نگهداری نسبت به چی؟ وقتی می گیم نگه داریم باید بگیم یعنی چی؟, چی؟ چی کار کنیم؟ اونجایی جایی که میخوایم این کارو بکنیم صلاح خودمون جوری نگه داریم که بتونیم این کارو بکنیم اونجایی که نباید این کارو بکنیم خودمون جوری نگه داریم که این کار از ما سر نزنه لذا حبس نفس نفس خود را جوری نگه داریم انگار زندانی کردیم بر چیزی که شرع و عقل می میکنه پس این ور قضیه شر میگه این کارو بکن عقلم میگه این کارو بکن نفس رو جوری حبس کنیم یعنی نگه داریم برای انجام این کار بگیم برو واسا انجام بده یا از اون چرا که عقل و شر نه می نسبت به او حبس کنیم. یعنی شر میگه این کار رو نکنی عقلم میگه عزیز من درست نیست این کار تو آقلانه نیست بتونیم خودمونو به گونه نگه داریم حبس کنیم که این کار رو انجام ندیم لذا در میدانهای مختلف به اقتضای اون میدان صبر در اون میدان معنای خاص خودشو پیدا میکنه در میدان جنگ صبر یعنی شجاعت در میدان جنگ با هوای نفس شجاعت میشه قلبه بر هوا از فهمیر فرمودن اشجان ناست من غلبه هواهو صبر نگهداری خیشتن جهت غلبه است دیگه نگهداری خیشتن جهت غلبه در جنگ با دشمنان خارجی میشه شجاعت نسبت به اونها در هوای نفس میشه غلبه بر هوای نفس شجاعت به این معنی در پیش آمده ها و مشکلات زندگی میشه سعه صدر اینا همه رو بحث کردن تو کتب لغت اما حالا از نظر قرآن کریم آیاتی که سبر و مطرح میکنه فراوان و مزامین عجیبی رو هم در این رابطه به ما میآموزه حالا من به عنوان نمونه بعضیشو که فرصت اجازه میده اجازه بدید اشاره بکنم ردشم انشاءالله اگر فرصت بود ما حالا امشب که بعیده در شبهای دیگر یه مقداری شاید بیشتر باز به بحث آیات قرآنی و روایاتی که در این رابطه هست بپردازیم سوره رعد آیه بیست و که پایانی که داره خود آیه اینه سلامون علیکم به ما سبرتم سنع ما دار خب به کیا میگن سلام علیکم آیات قبلش اگر بخونید اجازه دید آیه قبل سری بخونم و لذین سبر و ابتقاء وجه رب به کسانی که برای جلب رضای پروردگار صبر میکنن و اقام و و انفق و ممار از اغناهم سرن و علانیه این کاراشون انجام میدن و انجام میدن تا میاد آیات بعد جنات و عدن نیت خلونها اینا رو وارد جنت میکنن به محض ورود به عالم دیگر ملائک مغرب الهی میان پیشواز شون میان چی میگن؟ سلامون علیکم درود بر شما این سلامون علیکم برای اینکه کنگه معنیش مشخص بشه اجازه بدید یه حدیث براتون تعریف کنم قطعا این حدیث رو یادتون هست ارش کردم مرحوم شبر از علمای بزرگ و معروف شیعه در کتاب بسیار زیبا و جانانشون حق یقین فی معرفت اصول الدین دو جلده سیاه کتاب جانانه است در اواخر جلد دوم در رابطه با معاد یک چند تا روایت راجب عالم قبر و برزخ و قیامت نقل میکنه قوغاس من جمله این روایت میگه کسی که داره جان میده پیغمبر فرمودند کسی که داره جان میده تو لحظه جان دادن تمام اون امکانات و گذشته زندگیش جلو چشمش میاد از هر یک از اینها کمک میخواد من دارم میرم میگن کاری از ما ساخته نیست از همه معیوس میشه اطرافیاشون، بستگانشون دوستاشون رفقهاشون سروتشون غیره و غیره اون موقع امیر بالا سرش میشینه این یک رازی رازیست که غیرشی هم نقل کرده چه مؤمن چه کافر اختصاص به مؤمن نداره موقع جان دادن اذن الهی نک امیرالمؤمنین باید بالا سرش حاضر شه حالا رازش هرچه هست بماند این بنده خدا که از همه جا محروم شده متوجه مقام امیرالمؤمنین میشه چشماشو به او میدوزه اگر مستحق انایت و لطف باشه آقای لبخندی میزنن مضمون سلام علیکم رو میشنوه آرام جان میده راحت پس سالی که نکوست از بهارش پیداست میگه دیگه آسایه شما شروع شد لذا بعضی وقتا مثلا میگن فلانی فوت کرد خدا رحمتش کنه راحت شد چقدر بیماری میکشی میگم از کجا میدونید راحت شد خدا کنه راحت شده باشه. چون بعضی تازه با مردم گرفتاری داره شروع میشه اونی که با مردم راحت میشه باید گفت به حالش بله درسته لذا میگه اونی که مستحق انایت حضرت یه لبخندی میزنه سلامون علیکم اینی احسن آفری بیا خسته نباشی ولی اونی که مستحق انایت نیست تا چشماشو میدوزه حضرت سرشونو برمی کردنه پناه برامود وقتی سرشو برگردون این متوجه میشه که دیگه شروع شد همینجا من یه تذکر تو پرانتز با هم دیگه بگیم ایام محرمه میخوایم شالا درس بگیریم از آشورا و کربلا و امام حسین دیگه دقت بکنید شما رو به خدا فکر کنید. اگه من اشتباه میکنم به من یاد بدید اگه درسته کمک کنید منم اینجوری بشم ما هفتاد سال عمر کنیم این هفتاد سال عمرو ناز و نعمت و خوشی و عیش و نوش و هرچی اختضای این عالمه تازه منهای رنجش تازه با این قید که نمیشه تو دنیا نمیشه ولی اون لحظه ای که مولا بالا سر ما نشسته داریم جان میدیم بیایم بحث کنیم بیایم بیشتر تحقیق کنیم ولی اگر باور کردیم واقعا میارزه اون لحظه ای که از سرشونو سرشون رو برمیگردونن و به عکس هفتاد سال خونه دل بخوریم رنج ببریم فوش بشنویم برخی مسائل رو در جامعه تحمل بکنیم ولی با اون لحظه که داریم وارد عالم اصلی میشیم که اینجا مسافرخونه است کمدون بستن مدت توقفمون تو مسافرخونه تموم شد بفرمایید برید جایگاه اصلی خودتون اونجا بیان بگن سلامون علیکم احسن دست مریضات بفرمایید نمیارزه عاقل کیه لذا اما این سلام علیکم رو بلافاصله قرآن چی میگه سلامون علیکم بما صبرتام. به ما اینجا چی معنی کنم؟ برای اینکه به خاطر اینکه ای سلام علیکم، ای خوشبش، ای آفرین دست مریزاد، این داریم میان به استقبالت نگران نباشی، هوا تو داریم. به ما صبرتام برای اونی که شما صبر کردید، استقامت نشون دادی، خسته نشدی، چهار تا فش بدن از میدون دریم. چهار تا نقشه های خائنانه برای ما بکشن، خسته بشیم راه کنیم چهار نفر تو دانشکده و مدرسه و فلان مجلس عروسی هجاب و مسخره کنن هجاب و کنار بگذاریم او وقت ما دم از امام حسین بزنیم به برجستگان از اصحابش در روز آشرا میگه صبرن برو بالاتر اشتادی احسن دست مریضات حالا بیا بالاتر سب کن ببین به کجا میرسی سلامونه علیکم به ما سبرتم فنعمه اقبتدار خدایا اینو من عقیدم میگم به بزرگانم گفتم خدا بیا یکی از بزرگان رو تو قبرستان بقی حالم به هم خور یه بزرگی ارادت بهش داشتم خدام رحمتش کنه با چه خبرته که کمی آروم باش گفتم من یه ارزی میکنم شما ببینید که این درسته یا غلطه اگه درسته تو شما بیا کمکم کن اگه غلطه خب منو قانه کن چشمنو چیه گفتم عقیده من اینه این بزرگواران که حالا تو بقی هستین این بزرگواران مشهد میریم امام کل هم نورون واحدن فرقی نمیکنه انشالله حرم مام حسین رفتی آقای مام حسین این بزرگواران همه کاری عالم وجودن به ازن الله این همه آثار رو که در آخرت میخوان نشون بدن فقط مال آخرته من میخوام تو دنیا به من نشون بدن اقل یه شو من آرام نمیگیرم تا تو دنیا ببینم گفتم اگه غلطه به من بگو غلطه اگه درسته تو هم بیا تو رو خدا اینجا التماس کن قسم بده گاهی ظرفیت نداریم به ما نشون بدن اگه یه ذره نشون بده دور بر میداریم لذا یه جورای این شکل بارو آقا تانوی کلاس اول افتدایی هستی حبا داری ریاضیاته دوره دکترا رو بگم برو حالا باید کارایی بکنی اون یه بحثیه لذا ببینید این سلامون علیکم به ما سبرتم فنعم اغبدار که در اون به ما نشون میدن توی عالم هم میتونن نشون بدن لذا خدا تو رو به عظمت این برجستگان غسمت میدیم توفیقی به ما انایت کن این سلامون علیکم رو در حیاتمونم بشنبید هدف اینجوری باشه خب این یک آیه صبرتون سلامون علیکم به ما سبرتم فنعم اقبت دار سوره اعراف آیه 137 فرصت اجازه نمیده این آیه رو میخونم یک کمی توضیح میدم اگر خدا خواست بحث و میگذارم فردشت چون طبقه روال نمیخوایم خارج از حد معمولی که قرار گذاشتیم بحث کنم خفصه بشید سوره احراف آیه سد و سی و هفت و اورتنال اللذین کانو یستزعفون مشارق الارضه و مغاربها اینی که گفتم تو دنیا میدن قران ملاک دارم ببینید حالا و اورس نلقاهم به ارث دادیم وارثشون کردیم کیا رو القوم کانو كانوا افون اون مردمانی اون قومی اون دسته‌ای که چی بودم مستضعف بودن مستضعف تو پرانتز درس کنم یه معنای منفی داره یه معنای مثبت معنای منفیش در قرآن سوره نساء اذا حتى بله تتوفى الملائكه ظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارز الله واسعه تهاجروا فيها میگه کسانی که بد بودن گناهکار بودن آلوده بودن خود ملائکه وقتی میان جانشون رو بگیرن میگن این چه وضعیه شما دارید اینم زندگی شد میگن كنا مستضعفين في الارض ما ضعیف بودیم آدمایی بودیم که خیلی قدرت فکر، منطق و تشخیص و اراده و اینا نداشتیم تحت تاثیر جو خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت رو ما هم رنگ جماعت شدیم اینجا قرآن کریم میگه ملائکه الهی انتقاد میکنن حرفو چیه ما ضعیف اینجوری بودیم تو میتونی از این خود رو در بیاری الان تکن ارض الله واسع و تو هاجروفی ها مگه زمین خدا وسیع نبود هجرت میکردید میرفتید یه جای دیگه مکانتون رو تغییر میدادید که تحت تاثیر رو جب نباشید این استضعاف منفیه استضعاف مثبت و نوریدان نمون علی الذین از توزعفو و نجعلهم ائمه و نجعالهم وارثین. این استضعاف یعنی چی؟ که این آیه رو بما معصره سلامه یعنی کسانی که حقشون را زایع کرده او نمی کند ولی شرایط برای احقاق حقش نیست مظلوم واقع شده ضعیف واقع شده نه اینکه خودش بخواد که ضعیف بمانه اون شرایط برای احقاق حقش نیست مثل 25 سال خانه نشینی امیرالمؤمنین که همه دوران غیبت امام عصر و همه مشکلات 11 امام قبل از امام عصر در همین زمینه بوده اینجاست استزاف به این معنیه دقیق بفرمایید و القوم الذين كانوا يستزعقون اون بندگان و قومی که مستضعف شده بودن حقشون رو کردند، کردن اینا رو ضعیف قرار داده بودن ما اینا رو وارث کردیم مشارق الارض و مغاربها شرق و غرب عالم دادیم به اینا کیان حالا عرض می‌کنم التي باركنا فيها که این شرق و غرب عالم رو که به اینها دادیم برکتها برشون درش بود یعنی زمین برکت داشت از آسمان برکت می‌اومد یک جامعه سربلند شدن و تمت کلمت ربک الحسنا علا بنی اسرائیل پس این قوم کی هستن امت حضرت موسی امت حضرت موسی قبل از اینکه حضرت موسی بیا تابع بشن و تو اون مسیر قرار بگیرن مستضعف بودن یا نه تو سرشون میزدند؟ مشکلات براشون بود در میگه بعدش چرا بعد از این که آمدن کنار عزت موسی همین امت اینگونه و اورسنا این میراث رو بهشون دادیم که چی بشن مشارق الارض و مقاربه ها علتی بارک ها که برکت درش براشون بود و تمت کلمت ربک بکل حسنا بنی اسرائیل به ما به خاطر اینکه صبر سبر کردن باز اونجا سلامون علیکم به ما سبرو و نعم اغبت دار اینجا اورسنا، بارکنا تمت کلمت و رب بکل حسنا که این خود تمت کلمت و رب بکن حسنها رو با دو جلسه بحث کنیم که این کلمه ی رب که حسنه و تمام شد یعنی چه با اون بحثی که در پایان اسلام که ولایت امیرالمومنین ابلاغ شد و تمت کلمت و رب بکن غن و عدلا لا دلله کلمات اینا بحث ها داره حالا اجمادن یعنی خدا اون چه اینا سزاوار بودن به اشتون نعمت داده. چرا؟ به ما صبرو به خاطر اینکه اینها صبر کردن و دمرنا ما کان یصنع فرعون اونچه که فرعون و قومش داشتن همه رو سرنگون و واژگون کردیم نابودشون کردیم بیچارهشون کردیم اینا رو آوردیم بالا چرا به خاطر اینکه صبر کردن پس وقتی میخوان بالا بیان با صبر کنن این صبر نسبت به این مرحله صبری که بنالکرام روز آشورا دارن کدوم مرحله است رب کجا باید درسن حالا انشاءالله من اجازه بدید این دعایه امشب کافی باشه عمری بود پرد شب آیاتی بخونم که همه پیغمبران فنجینا به خاطر سبر فعنجینا به خاطر سبر همه یعنبیان که چند تاشو نمونه میخونم سبری که پیغمبر و نجات میده نجات پیغمبر یعنی چی مثلا اگر راجب حضرت یونس داره و کذالک جل مؤمنین این نجات چه نجاتیه؟ از اون مرحله تکامل معنوی که میخواد از یه پله بره به پله بالاتر با صبری که داره به پله بالاتر میرسه و همه این صبرها در مقابل صبر زینب سلام الله علیها ها حساب نمیاد نکنید. مبالغه میکنم آه. خدا یا تو شاهدی دارم از آیات در میارم از روایات در میارم استدلال میکنم شما شاهدید برای یه بحث کچلو لاغل دویست آیه رو میخوام در کنار هم بگذارم که روش بحث کنیم در مقابل صبر زینب سلام الله علیه ها همه این صبر ها مقامی که خدا به زینب سلام الله داده باشه چه مقامی باید باشه اون وقت صبران بنل کرام فمل موت اللاغن تره بنل صبر کنید که یکی از اینها وجود مقدسه عزت زینب سلام الله علیه است که صبر زینب دیگه اونگونه است که من نمیدونم چجوری حرف بزنم به کمک امام سجاد میاد مندما گیرم نمیدونم چجوری حرف بزنم دارم عرض می کنم چون دقت بفرمایید اونهایی که صبر کردن تا شهید شدند خیلی بالاست خیلی بالاست یه تیغ به آدم میخوره دادش در میاد اون بحث بمان حالا اما بالاخره صبر در شهادت راحتتر از صبر در اثارته میگه من الان میرم میدون شهید میشم تموم شد ولی میگه باید واسم تو پرانتز ی که بگم لذا امیرالمؤمنین که میگه تو و پل عین غذا و پل حلق شجارا در چرا رابطه مطرح میکنه تو میدانهای جنگ یه جنگ آهد تا زخم برداشت اونجا که مشکلی برای علی نبود زخم را برداشته ولی اون مشتلات رو میگه تو اما وقتی داغ زهرا پیش میاد میگه قل صبری یا رسول الله انصفیته ای قضیه چه کرده با دل علی حالا داغ کربلا با دل زینب چه کرده ولی صبر رو ببینید یه تیکش رو بگم بعد دیگه حالا اینجا اومد ورود کربلاست و قضای کربلا امشب اینجا رو عرض کنم غروب آشوراس خیمه ها رو آتش زدند بچه ها رو تو بیابون ها دواندن امام سجاد زیر خیمه نیمه سوخته قرار گرفته به هر زحمتی صبر زینب رو ببینید یه طرف میدوه امام سجاد و نجات بده وظیفه برای امام زمانش داره یه طرف میدوه این بچه‌ها رو که دامناشون آتش گرفته آتش‌ها رو خاموش کنه یه طرف میدوه تو بیابونا بچه هایی که پراکنده شدن این بچه‌ها رو را که راوی نقل می‌کنه یه تیکه روزه شب 11ام نمی‌خوام بخونم یه منزولی دارم این تیکه رو ارزم کنم که یک در مقاتل نوشته شده یکی از سپاه دشمن میگه با اسبم هم همینجور میتازدند میومدند به طرف خیام یه دختر بچه‌ای رو دیدم که میلرزه وقتی منو دید به این حالت که رسووش دارم میرم نیزام دستش بود دستم بود دو تا دستاشو گذاشت رو سرش رو زمین نشست گفت یا شیخ در زبان عربی نیای بزرگ پیرمرد من یتیمم این صحنه را زینب سلام الله علیها همه رو دیده بعدم رفته که کمک اون بچه ها رو جمع کرده یه خیمه نیمو سوخته‌ای برپا کرده اینا همه رو توی اون خیمه گذاشته یه وقتی دو بچه بچه‌ها میشن این ورمی کرده اون ورمی کرده به هر قیمتی که دو تا بچه ها زیر بوتچه خابی به خاری دست در گردن هم کردن زیر بوتچه خاری حالا خوابشون برده جان به جان آفرین تسلیم کردن زینب آب آزاد شد در اختیار اینا گذاشتن یه مقدار از این آب و آورد حالا زینب میخواد به اینها آب بخورانه هیچ کدومشون آب نمیخورن تشنگی رو پشتر گذاشتن ولی در این حال آب نمیخورن اما خود زینب چه میکنه صبر رو ببینید همه این صحنه ها رو دیده ولی دو حقیقت دل زینب رو عجیب به خودش جلب کرده یکی خدا یکی حسین با خدا چه میکنه از زبان شعر بگم با حسین چه میکنه؟ صبر به این مقام شبست و برخصار مهرنگ نیست به جد بان که مرغ شباهنگ نیست به تابد همین نور کمرنگ ما بر ساد و افتاده در قسلگاه یکی خیمه دست غمش دوخته نظر کن که نیمی از آن سوخته در آن بستری از نریزی جوان به بگردش صفزده کودکان و زنان کبوتری صفت کودکان پریش فرو برده سرزیر پرهای خیش از این خیمه بنگر کمی دورتر سیاهی بیاید ترا در نظر که باشد که افتاده بر روی خاک که آید از او ناله سوزناک ملائک دهند از سما این نوید بابت خواهر پادشاه شهید مهندخت میر عرب زینب است به نازم که گرم نماز شب است به راز و نیاز و بسوز و گداز تو گویی که زهرا بود در نماز چنان است که هرگز ندیده غمی زیاد خدا نیست قافل دمی ولی خوشتلو دختر مرتضاس زدل دل راضی او بر رضای خدا با خدا داره راز و نیازشو میکنه از اون طرفم با حسین یواشکی سری میزنه بچه ها خوابشون برده یا نه محرمانه تو دل شب بیاد کنار گودال قتلگاه این صبر اما بدن یه یه بدن روح زینب اینه که اینجوری باید میشه بدن زینب به کجا رسید خب بدن طبیعی است عالم ماده رو داره میگن وقتی اسرا رو برگردندن به مدینه امام سجاد نزدیکی‌های مدینه که رسیدن به بشیر فرمود بشیر برو خبر بده ما اومدیم رفت خبر داد چادرای سیار رو برپا کردن پرچمای زیار رو زدن محمد حنفیه برادر حضرت عبدالله شوهر حضرت زینب دیگران حرکت کردند همین که به بیرون مدینه رسیدن پرچمای سیار رو دیدن محمد حنفیه قش کرد اومدن اینا رو که نزدیک آوردن تو خیمه‌ای که حضرت زینب بود و امام سجاد محمد حنفی برادرش عبدالله شوهرش محرم وارد شدند با امام سجاد بعد از اون قضایه عبدالله جعفر علامان نقل پرسید که یبن رسول الله عمتون زینب هم در کربلا شهید شو صدای زینب بلند شد عبدالله حق داری منو نشناسی اللهم باسمك العظيم لا أزم لا أزل بمولانا صاحب الزمن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان یا رحیم، یا مغلب الگلوب، سبت غلبي علا دینک، وکفنا یا غازی الاجب، كافي يا كافية المهمات إنك مجيب الدعبات إنك على كل شيء غذير برحمتك يا رحم الرحمين يا مفتغ فتغ یا مفرج و فر یا سبب یا متمم و تمم اله و رب یا سيدي الكريم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم یا حمید به حق محمد یا علي به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به هنگام حسر یا قدیم الاحسان به هنگام او و ستات نمازمی در ریته لطف خدا و به امشب برو اهلل بیت بی ابدالله بکر و لا به اون لحظه احاطه احلال بیت به زینا، زینه به اون مناجات شب ابی عبدالله در صحرای کرولا به درد بلای زینب حسین در این یک عبده خدا ولی یک بر به غاسم ابن الاسل به علی اصغل به طفلان مظلم به شهدای کربلا یا الله یا الله عمر براج ما به زمان امزاب برمان خدا قلب وجود مقدسش از ما خوش راضی و رازی بگردار خدا توفیق خدمت گذار یا به ما این آید و فرمان خدا شرکت در مجلس عزاداری ابی عبدالله در رکاب مولای من امام الزمان به ما این خدا مریضا منظورین مورد نظر خدا لباس عافیت به پوشا مشکلات هم غم بر طرف بفرما هوایج مشروعه جم بفرما سفارش گنندگان مخصوصیان مورد نظر هوای جشت خواستش خواسته یمه این جمع روا بفرمای خدا اوات تو زبی حقوق من از ما خوشنود و رازی بگردان خدا در این دعه محرم در این ماه محرم و سفر ماه ازاداری آل و توفیق معرفت و عرض عدب و سوگواری به ما نایت و به نبی و آله من سریع سوال اجازه بدید جواب بدم بعد سلام رو اجازه بدید بدم فرمودن که من دفری از قول مرجعی نقل کردم که اگر مجلس گناه باشه مجلس ترک کنیم نسبت به صله رحم چه میشه ببینید اون موضوع خاصی بود در رابطه با مجالس عروسی که وقتی خانم ها زیادن و داماد وارد مجلس میشه بعضی خانم ها حجاب ندارن فرمودن مجلس گناه در مجالس عادی هم اگر مجلس گناه صله رحم ترک نکنید اون مجلسو ترک کنید به اتاق دیگه‌ای برید که نوعی امر معروف باشه و سلام و رحمت